سلام بر همراهان همیشگی کانال هزار افسان جایی که قصه‌های کهن رنگ و بوی دیگه ای می می‌گیرند امروز به قسمت چهارم داستان ملک جمشید رسیدیم داستانی بسیار جذاب و هیجان انگیز در قسمت قبل تا اون جایی گفتیم که پادشاه دونست که ملک جمشید شاهزاده است پس از خانست که به جای پیسر گم شدش باشه و گفت که حتی حاضره بدون اینکه ملک فریدون رو نجات بده دخترش ماه آلمگیر رو به اون بده اما ملک جمشید قبول نکرد و گفت من عهد کردم که ملک فریدون رو نجات بدم و حتما این کارو میکنم. بعد از اون هم پادشاه ازش خواست که چهار شبان روز میهمانش باشه. بعد از اون هم میتونه هر جایی که خواست بره. ملک جمشید رو هم تنها گذاشت تا اون شب رو به ملک جمشید که خواب بود ماه عالمگیر به کمک دایی خاتون به اتاق ملک جمشید اومد و اون دو دل داده تا نزدیکی های صبح در کنار هم به گفتگو و اظهار عشق پرداختند و ماه آلنگیر موقعی رفتن به ملک جمشید گفت امشب هر لحظه که نامه من به دستت رسید همون لحظه بلند شو و پیش من بیاد که چشم به راهت هستم و اینک ادامه ماجرا. فردای اون روز وقتی که پادشاه به بارگاه اومد و بر تخت نشست وزیران و امیران هم همگی اومدن پادشاه دست ملک جمشید رو گرفت و اونو در کنار خودش نشوند و گفت ای امیران و بزرگان مجلس من بدونید که این جوون پادشاهزادی شهر زیرباده همه امیران و بزرگان خوشحال شدند و تعظیم کردند از اون طرف ماه عالمگیر وقتی که صبح شد دامن دایه خاتون رو گرفت و گفت دایه جون دردت بچونم فکری کن که امشب این جوون رو دعوت کردم که به قصرم بیاد. دایه عصبانی شد و گفت این نازنین آخه این چه کاری بود که کردی مگه از جونت سیر شدی یا میخوای من رو هم به کشتن بدی چه تو یه جوون رو میخوای به اینجا بیاری این خیالات رو از سرت بدر کن که کشته میشیم. دختر دامان اونو گرفت و گفت دایه جان کار من از این حرفا گذشته هرچه زودتر از بنبرم بهتره به این خاطر که میدونم از صودای عشق به این جوون رسوا و دیوونه میشم. اگه این جوان رو امشب به من برسونی قسم میخورم که تو رو از مال دنیا بینیاز میکنم چون این جوان فردا میخواد به تلسم حمام بلور بره و منم میخوام یه بار دیگه اونو سیر ببینم شایدم بتونم از رفتنش به حمام بلور منصرفش کنم که اگه به تلسم بلور بره و برنگرده خودم میکشم دایه که این حرفها رو شنید دلش با به رحم اومد و گفته ای نازنین. آسوده باش که تا جون در بدن داشته باشم در کارت کوتاهی نمی کنم. ولی فعلا بلند شو و امروز فقط به فکر خودت باش. دختر خوشحال شد و دسته دایه خاتون رو بوسید و بلند شد و اون روز رو به شادی و سر خوشی گذرند و مدامم به دایه خاتون میگفت دایه جان مگه امروز روز قیامت شده که آفتاب غروب نمیکنه و شب نمیشه. دایه خاتون هم اون رو به سبوری دعوت می کرد القصه روز که به پایان رسید پادشاه و شانزاده برای خوردنشان به خلوتخانه شاه رفتند. از اون طرف ماه عالمگیر هم به خاجه یاقوت گفت برو و پشت خلوتخانه شاه بایست و نگاه کن و هر وقت که پدرم بلند شد و به حرم خانه خودش رفت سری و بی, بی من خبر بده خاجه هم رفت و پشت خربت خانه ایستاد و نگاه میکرد و سه ساعت که از شب گذشته بود پادشاه فرمان داد که شام آوردند و بعد از صرف شام هم پادشاه بلند شد و گفت ای فرزند شب به شما خوش و بعد هم داخل حرمخانهٔ خودش شد خاج یاقوت هم فورا خبر آورد و ماه عالمگیر نامه ای نوشت و به دست دایی خاتون داد که همون لحظه اونو به دست شاهزاده برسونه. دایی هم چنین کرد و هنگامی که ملک جمشید نامه رو خوند به دایی خاتون گفت دایی جان تو جلو جلو برو و منم دنبالت میام. اون دو تا رفتن تا وارد باقی شدند و شاهزاده دید باقی مثل بهشت برین. و همونطور که در اون باغ حرکت می‌کردن به قصر با شکوهی رسیدند و رفتند تو شاهزاده دید که مجلس میهمانی برقراره و کنیزان و زیبارویانم در حال رقص هستند و ماه عالمگیر هم با لباسای زیبا و سر و صورت آراسته بر بالای تخت گوهر نشانی نشسته تا چشم ملک چمشید بهش افتاد تعظیم کرد و گفت قربانتان گردم. چشم دختر هم که برقد و قامت و چهره زیبای شاهزاده افتاد هرچی خواست قداره قد کنه نتونست. بی اختیار از جاش پرید و از تختش پایین اومد و دست شاهزاده رو گرفت و رو به دایه خاتون کرد و گفت دایه جان چرا بیکار نشستین مجلس رو به چرخون؟ القصه کنیزان و زیبارویان شروع به نباختن و خوندن و رقصیدن کردند و مجلس همچنان گرم بود و شادیها میکردند دو دلدار در کنار هم سرمست از عشق بودند تا اینکه یدفهای عشق از چشای ملک جمشید جاری شد ماه عالم گیرم که اینطور دید گفت این اشکا برای چیه؟ قربانتون گردم امشب شب بسال شب شادی چه اتفاقی افتاده که اینطوری یههیی دلتنگ شدی و گریه می ملک جمشید گفت: گویا اثر گذشته من خبر نداری. ای نازنین روزگار منو از پدر و مادر تاج دارم و دولت و پادشاهی جدا کرد. به طوری که چهل روز در بیابان آواره شدم. تا اینکه وارد این شهر شدم و هنوز نرسیده بودم که تصویر تو رو دیدم و عاشق شدم و در سوز عشق می سوختم تا اینکه خدا وسیله جور کرد و دل تو به حال من سوخت و منو پیش خودت خواستی ولی چه فایده که همین امشب مهمان تو هستم و فردا هم جونم رو قربان یک تار موی تو خواهم کرد و داغ فراغ رو به خاک خواهم برد و نمیدونم که به تو چه خواهد گذشت ماه عالمگیر که این حرف رو شنید شروع کرد مثل عبر بهار به گریه کردن و خودش رو به آغوش شاهزاده انداخت و گفت جونم به قرباند این چه حرفی بود که زدی دل منو کباب کردی مگه چه تصمیمی داری و میخوای چیکار کنی شاخزاده گفت میخوام فرداسو به تلسم حمام بلور برم و برادرت رو نجات بدم و برم یا اونکه کشته بشم. دختر گفت یار عزیز من خاج یاغوت برام خبر آورد که پدرم تو رو به فرزندی قبول کرده و ولی عهد خودش کرده و وعده کرده که منو به عقد تو در میاره. چطور خواهد گذاشت که تو به تلسم حمام بلور بری؟ شاهزاده گفت درسته ولی من در حضور قهرمان سپه سالا رو تعدادی از امیران عهد کردم که به تلسم میرم و ملک فریدون رو نجات میدم سرم بره قولم نمیره و فردا به تلسم خواهم رفت. دختر شروع کرد به گریه کردن اما ملک جمشید دستشو گرفت و اونو به آرامش دعوت کرد و گفت ای نازنین من صبر داشته باش خدا کریمه انشالله در چشم به هم زدنی از تلسم برگشتم و سکه ای این مردانگی رو به نام خودم خواهم زد و به تو خواهم رسید حالا این عرفارو کنار بذار و به ای شنوش خودمون مشغول بشیم که صبح نزدیکه القصه اون شب هم گذشت و صبح روز بعد دوباره پادشاه دست ملک جمشید و گرفت و به بارگاه رفتند هر دو بر بالای تخت پادشاهی کنار هم نشستند امیران و وزیران هم اومدند و ساعتی نگذشته بود که ملک جمشید از جاش بلند شد و دست به سینه گذاشت و تعظیم کرد و روبه روی شاه ایستاد پادشاه گفت ای فرزند چه مطلبی داری بگو تا بدونیم چه حاجتی داری؟ شخصاد ملک جمشید گفت قربانتون بشم تقاضا بدین من مرخص بشم و یه نفر راه بلد رو هم همراه هم کنید تا من رو به تلسم حمام بلور برسونه شاید که از شانس پادشاه ملک فریدون رو نجات بدم و بیارم پادشاه گفت فرزند معلومه که نصیحتمو گوش ندادی و میخوای دونسته خودتو به کشتن بدی اما من جواب پدرت رو چی بدم چون این حکایت رو اگر بشنوه حتما لشکرکشی میکنه و با ما جنگ میکنه و خون ناحقی که میریزه به گردن من میشه بیا و از این خیال بگذر هرچی بخوای بهت میدم شاهزاده گفت من به شما یه کاغذ میدم که به رضایت خودم به تلسم رفتم و اهدی حق مطالبه خون من رو از شما نداره. القصه هرچقدر پادشاه و امیران و وزیران اونو از این کار من کردن نشد و گفت که به سر پدرم قسم تا نرم دستبردار نیستم. و پادشاه که این تردید دید جوون پس من خودمم هم همراهت میام بنابراین پادشاه و وزیر و رستم خان و امیران همگی سوار عصب ها شدند و با ملک جمشید به راه افتادند و از دروازه شهر خارج شدند مردم هم که فهمیده بودند به دنبالشون رفتن و همه از مرد و زن به خاطر ملک جمشید گریه میکردند. تا اینکه بالاخره به نزدیک باغ بلور رسیدن پادشاه گفت ای جوون ما از این بیشتر نمیتونیم بیای ملی جمشید از اسب پیاده شد و رکاب شاه رو بوسید و گفت قربانتون بشم یه حاجتی دارم و اونم اینه که من به تلسم اسم هممام که رفتم شما تا سه رو صبر کنید. اگه بر نگشتم و کشته شدم شما نامه ای از قول من به پدرم پادشاه زیرباد بنویسید و تمام ماجرای من رو تا اینجا که به رضایت خودم به تلسم سلیمان رفتم و جونم رو فدا کردم شهر بدید و ازش بخواییم که منو حلال کنه. مادرم هم من رو حلال کنه بعد هم برگشت و دست رستم خان رو بوزید و گفت ای پدر تو به گردن من حق داری برای اینکه کسی در این ولایت منو نمیشناخت و تو منو لباس دادی نون دادی و حالا توقع دارم که نمکت رو به من حلال کنی صدای گریه رستم خان بلند شد و گفت فرزند من چطور بعد از تو زنده بمونم اجازه بده اول من به تلسم برم و جونم رو فدای تو کنم شاهزاده گفت پدر عزیزم من خودم باید برم و این سکه رو به نام خودم کنم بعد هم در گوش رستم خان آهسته گفت اگه از تلسم بر نگشتم، سلام من رو به ملکه آفاق ماه عالمگیر برسون و بگو جونم رو فدای اون کردم. بعد از این صحبت ها، ملک جمشید دوباره رو به پادشاه کرد و گفت قربانتان گردم، بگویید ببینم چگونه معلوم میشه که این تلسم شکسته شده؟ پادشاه گفت فرزند از قراری که پیشینیان، گفتند در میان گرمخانهی حمام در پای خزینه چاه بسیار بزرگیه و هر کس بره و سر اون چاه حلوایی از آرد و روغن بپزه و همین که اون حلوا پخته بشه تلسم برطرف میشه بعد هم پادشاه فرمان داد مقداری آرد و روغن و اصل، بادیگ و کفگیر و هیزم آوردند و اون رو در کولهای قرار دادند. شاهزاد کوله رو بردوش انداخت و شمشیرش رو هم از کمرش باز کرد و به گردنش انداخت و دست و پای شاه رو بوسید و خداحافظی کرد و مثل شیر روانه تلسم شد. همین که به نزدیک جر باغ رسید ناگهان صدای وحشتناکی شنید که ای جوان به کجا میای مگه از جونت سیر شدی؟ شاهزاده تحویل نگرفت دوباره صدای محیبتری بلند شد که آهای جوان به هت میگم برگرد اینجا مکان شیران نر و مردانه چقدر تو خیر سری به روح سلیمان نبی قسم که کشته خواهی شد. باز هم شاهزاده تحویل نگرفت تا اینکه به خود در باغ رسید دست به در زد و در باز شد داخل باغ شد و دوباره صدای وحشتناکی بلند شد که ای دربان تلسم نزار این جوان بی هیا داخل بشه نگهان ملک جمشید دید که یک شیر نر بسیار بزرگ از سمت راستش میاد و نره میزنه تا خواست که متوجه اون بشه از سمت چپش هم نره بلند دیگه ای شنید و نگاه کرد و دید شیر بزرگ دیگه ای هم از سمت چپ داره به سمتش میاد شاهزاده رو به آسمان کرد و گفت خدایا به تو پناه میبرم خودم و به تو سپردم و ایستاد تا هر دوتا شیر بهش نزدیک شدن و خواستن که بهش حمله کنند. ولی اون دو دست مردانه خودش رو دراز کرد و بیخ گلوی هر دو تا شیر رو گرفت و چنان فریاد بلندی زد که باغ به لرزه اومد و گفت از مردان روزگار مدد و بعد هم چنان دو کله شیر رو به هم کوبید که در دم هر دو جان دادند و بر زمین افتادند بعدم به راه خودش ادامه داد. اما دوباره صدای مهیب دیگه ای شنید که ای جماعت این ناجوان مرد شوم رو سنگ باران کنید. شاهزاده یه لحظه دید که از همه طرف مثل باران سنگ به سرش میریزه. در لحظه سپر آهنی خودش رو بالای سرش کشید و دوید و از اونجا دور شد و به خیابان اصلی رسید. با صدایی بلند شد که ای یاران این جوان جسور خیلی خیده سره اونو تیرباران کنید. از چهار طرف تیرها به سمتش باریدن گرفت این بار هم سپرش رو روی خودش گرفت و همونطور دوید تا اینکه به در حمام رسید و فوراً وارد شد و گفت بسم الله خدایا به امید تو و قدم در دهلیز حمام گذاشت که ناگهان صدای اربده بلندی شنید که ای جوان بیباک صبر کن که رسیدم شهزاده نگاه کرد و قول سیاه بزرگی رو دید که چوب دستی سنگین وزنی در دستش بود و فریاد زد که ای آدمی زاده خیره سر هرچی بهت گفتن برگرد گوش ندادی حالا به دست من کشته خواهی شد و چوب دست رو به دور سرش چرخوند و شاهزاده جسور ما هم خودش را زیر سپرش پنهان کرد و قول چنان ضربتی به سپر زد که جهان پیش چشم شاهزاده سیاه شد اما مقاومت کرد و ایستاد و اون قول نانجیب دوباره چود دستش رو بالا برد که ضربه دیگه ای وارد کنه اما شاهزاده به چالاکی تمام شمشیر از غلاف بیرون کشید و همچین ضربتی بر کمر قول وارد کرد که در دردم قول بر زمین افتاد و مرد بعد از اون شاهزاده از داخل دهلیز حمام هم گذشت و وارد خود حمام شد. پیرزن خمیده جلو اومد و سلام کرد و گفت شکستن این برای تو مبارک باشه و بدون که تلسمو شکستی. ولی باید به فریاد منم برسی. شاهزاده گفت مگه مشکل تو چیه؟ پیرزن گفت ای جوان من یه پسر دارم که مدتی توی این تلسم گرفتار شده. اونو نجات بده. شاهزاده پرسید خوب کجاست پیرزن گفت بالا سرتو نگاه کن. شاهزاده نگاه کردید که یک تابوت رو با زنجیری از سقف حمام آویزان کردن و پیرزن گفت پسر من توی اون تابوته اگه میخوای دل منو شاد کنی دستت رو بگیر تا من پا روی دست تو بذارم و بالا برم و پسر نوجوونم و نجات بدم بعدم شروع به گریه و ناله و و کرد شاهزاده یغی سه دلش سوخت و دستش گرفت و گفت خب بیا برو روی دست من و پسرتو نجات بده پیرزن اونو دعا کرد و جلو رفت و پاش رو روی دست شاهزاده گذاشت و پای دیگش رو هم بر روی شانه شاهزاده گذاشت و بالا رفت شاهزاده در لحظه تصور کرد که کوه بزرگی رو روی دوشش گذاشتن و نزدیک بود که کمرش بشکنه سرش رو بالا کرد و دید پیرزن دست داخل تابوت میکنه و یه قطعه گوشت مردار بیرون میاره و میخوره عرق از سر و روی شاهزاده سرازیر شد و دستشو عقب کشید و اون پیرزن بر زمین افتاد و خواست بلند بشه که شاهزاده عمانشی نداد و جونشو گرفت بعد از اون شکر خدا کرد و در گرمخانه حمام رفت و دید که زمین و دیوار حمام یک پارچه بلوره و در پای خزینه حمام هم چاهی دید که دهانه ی اون چهل زرع بود. کنار چاه نشست کلش و زمین گذاشت وسایل پختن حلوا رو هم درآورد و خواست که حلوا به پزه. اما به خاطرش اومد که سنگی برای اینکه که اجاقی بسازه با خودش نیاورده آه از نهادش برامد و با خودش گفه ای دل غافل سنگ نیاوردی حالا چطور میخوای حلوا بپزی؟ که ناگهان از میان چا صدایی بلند شد که ای جمون داری به چی فکر میکنی هرچی لازم داری بگو تا بهت بدم. شهزاده گفت ای ساخه به صدا میخوام یکم حلوا بپزم ولی فراموش کردم سنگ برای ساخت اجاق بیارم اگه سنگ داری برای من بیار صدا دوباره بلند شد که بگیرین سنگارو و از میان چا یه چیزایی بیرون افتاد ملک جمشید اونارو رو برداشت و دید که جمجمه آدمه خندید و اونا رو برداش و با همونا اجاق درست کرد و القصه حلوه رو پخت بوی حلوا که بلند شد دید دستی از میان چاه بیرون اومد که مثل برگ گل نازک بود شاهزاده با خودش گفت صاحب این دست خواست منو به و عوض سنگ اینا رو انده منم حلوایی بهش بدم که لذت از عمرش بره بنابراین با کفگیر داغ قلبای داغی رو بر کف اون دست ریخت صدایی بلند شد که آی سوختم سوختم سوختم و دستش رو تکون داد و جواهری از اون افتاد و شاهزاده اونو برداشت و در جیبش گذاشت و در این لحظه دید که از در حمام پیرمردی وارد شد و سلام کرد شاهزاده گفت ای پیره مرد چه کاری ای و اینجا چکار میکنی پیر مرد هم گفت ای جوان من پاسبان این تلسم هستم و تو این تلسم رو شکستی دولت ده تا پادشاه توی این تلسمه. ملک فریدون هم در همین جا به دست افغاندیو گرفت داره. شخصاده گفت خب حالا باید چیکار کرد؟ پیرمرد ای جوون اگه بخوای ملک فریدون رو نجات بدی باید داخل این چاه بری و افغان دیو رو بکشی که تا اون کشته نشه ملک فریدون نجات پیدا نمیکنه شاهزاده بدون معطلی پیرمرد رو از بین برد و تنها به ابریشمی از کمر باز کرد و بسم اللهی گفت و اون رو به ستونی بست و سر دیگش رو هم به دست گرفت و وارد چاه شد اون پایین رفت تا پاش به زمین رسید کمی در تاریکی ایستاد تا چشمش به تاریکی عادت کرد و بعد دید که در دیواره چاه راه باریکیه که میشه ازش عبور کرد پس واردش شد و رفت تا اینکه یه روشنایی دید و به دنبالش رفت و سر از باغ بسیار زیبایی در آورد که در وسط اونم قصر خیلی زیبایی بود هرچی اون اطراف و نگاه کرد کسی رو ندید. داخل قصر شد و یه صدای ناله ضعیفی رو شنید که می خدا یا تا کی در این زندان باشم یا مرگ یا نجات که دیگه طاقت ندارم. به سمت صدا رفت تا به اتاقی رسید و واردش شد و جوان برومندی رو با تنابی بسته دید به شکلی که نمیتونست هیچ حرکتی بکنه. شاهزاده جلو رفت و سلام کرد و جوان یه نگاهی کرد و شاهزاده رو دید و گفت ای جوان تو چه کسی هستی از کجا اومدی مگه از جونت سیر شدی تا زوده از اینجا برو که کشته میشی شاهزاده گفت چرا کشته بشم مگه اینجا یا و تو کی جوان گفت اینجا قصر افغان دیوه الان نیست. منم ملک فریدون هستم و مدت سه ساله که به دست افغان دیو گرفتارم. نه منو میکشه نغازات میکنه. و اکنون سه روزه که به شکار رفته. حالا هر جا باشه زود برمیگرده ولی تا نیومده از اینجا برو که تو رو میکشه. شاهزاده که این حرفا رو شنید خدا رو کرد و گفه ای برادر من ملک جمشید پسر پادشاه زیرباد هستم. اومدم که افغان دیو رو بکشم و تو رو نجات بدم. تلسم هممام بلور رو هم شکستم. بعدم دست و پای ملک فردون رو باز کرد و به تالار اصلی قصر اومدند و بر روی صندلی نشستم. یه صدای سوزناک دختری رو هم از اتاق دیگه ای شنیدن که می ای خالق مهربان تا کی گرفتار باشم دیگه طاقت هم تموم شده به دادم برس. شاهزاده جگرش کباب شد و از ملک فریدون پرسید ای برادر صاحب این صدا کیه که دلم کباب شد؟ اونم گفت من صاحب این صدا رو که نمیشناسم ولی دو ساله که شب و روز این صدا رو شنیدم شاهزاده بلند شد و دست ملک فریدون رو هم گرفت و به دنبال صدا رفتم تا به اتاقی رسیدند و توی اتاق رفتم چشم شاهزاده بر دختر پریزادی افتاد که دست و پای اون رو هم بسته بود ملک جمشید همینطور متعجب به ملک فریدون گفت ای برادا انگار این دختر پریزاده؟ ملک فریدون نگاهی به دختر کرد و تا چشمش به اون زیبا رو افتاد یک دل نصد دل عاشقش شد دلش به تپیدن افتاد و رنگش پرید اما خودداری کرد که ملک جمشید متوجه نشه. ملک جمشید جلو رفت و گفت ای نازنین بگو بدونم تو چه کسی هستی کدوم بی و بی انصاف این تو رو بسته؟ دختر که این صدا رو شنید سرش رو بالا کرد و چشمش به صورت شاهزاده افتاد و فریاد کرد. ای جوان آدمی زادی؟ چرا به اینجا اومدی؟ زود باش زود باش برگرد که کشته میشی؟ اما ملک جمشید دست و پای اونو باز کرد و اونو از زمین بلند کرد و به تالار اصلی آورد و جام شرابی بهش داد تا قوتی پیدا کنه. دختر که به حال اومده بود خوب نگاه کرد. چشمش به ملک جمشید و ملک فریدون افتاد. چشمش که به ملک فریدون افتاد آشق جمال روی او شد و اندامش لرزی اما خودداری کرد و رو به ملک جمشید کرد و گفت ای جوان بگو بدونم شماها چه کسی هستین و از کجا اومدین اینجا چیکار کار میکنین؟ ملک جمشید گفت ای نازنین من پادشاه شهر زیربادم اسمم ملک جمشیده و تل حمام هم همام بلور رو شکستم این جوان هم پادشاه شاهزاده است و نامش ملک فریدونه که اون هم مثل تو در اینجا زندانی بوده و اونو نجات دادم. در این لحظه روی آسمان ابر بزرگی نمایان شد و از بین ابرها صدای عجیب و غریبی بلند شد. رنگ از چهره ملک فریدون و دختر پرید. ملک جمشید پرسید چی شده؟ اونا گفتن بدون که افغان دیو اومد. حالا ما رو با یه گرز آهنی سنگین میکشه شاهزاده گفت نه ترسید و خودتونو بی خدا بسه که کریمه و ما رو از شر این دیو نگه میداره از جاش بلند شد و به حیات قصر رفت اون دوتا هم دنبالش اومدند و در کنار استخر حیات قصر ایستادند و در این لحظه از بین ابرها دیو بسیار بزرگی که گرز سنگینی هم در دستش بود بیرون اومد و چون چشمش به اونها افتاد همچین نعرهای کشید که باغ و قصر به لرزه در اومدند بعد هم گفت ای بنی آدم تو دیگه کی هستی چطور جرأت کردی که به این مکان بیایی و تلسم منو به هم بزنی و زندانیای منو نجات بدی به روح ناپاک ابلیس قسم که همین الان مادرت رو به عذات مینشونم بعد هم گرز سنگین رو به دور سرش چرخوند و ملک جمشیدم سپر آهنی خودش رو بالای سرش گرفت و نام پروردگار رو به زبونش آورد و گفت خدایا خودمو به تو سپردم که بزرگی و عظمت فقط مال توست و اون دیو سیاه سیرت جلو اومد و همچین گرز رو بر سر ملک جمشید فرود آورد که اگه سپر آهنیش نمی‌بود در جا می‌مرد به خیال اینکه اونو نابود کرده فریاد زد که ای آدمی زاد خوب نرمت کردم ملک جمشید که جون سالم به در برده بود گفت ای من اون مگه چیکار کردی دیو نگاهی کرد و دید که حریف ایستاده همچین نه زد که پشت شاهزاده لرزید و دوباره هم گرز گران رو دیو بر سرش چرخوند و به سمت ملک جمشید فرود آورد. یک زربهی که از اولی هم سختتر بود ملک فریدون و اون دختر هر دو فریاد زدن ملک جمشید خودتو حفظ کن که حریف خیلی قویه بعد هم دست به دعا برداشته بودند و نگاه می کردند. ملک جمشید دید اگه ضربت دیگه‌ای به سرش بخوره که از بین میره این بود که دوباره خدا رو به عظمت و بزرگی یاد کرد و آهسته شمشیرش رو از زیر سپرش بیرون کشید و گفت خداوندا از تو مدد بر جوانی من رحم کن که یار من ماه عالمگیر و پدر و مادرم چشم به راه من هستند پروردگار و خودم رو به تو سپرد دیف هم نزدیک شده بود که ضربت سنگین آخر را بر سر ملک جمشید بزنه که ملک جمشید شیر بچه نامدار مثل یک شیر قرید و سپر رو به یه طرف کند و خدا رو به عظمت یاد کرد و زیر بقل اون دیو بدسیرت رو خالیدید. با چالاکی تمام چنان شمشیر رو ناقافل به زیر بقل دیو زد که شمشیر از بالای کتف دیگه دیو خارج شد. سرش با یک دست به یک طرف و تنش به طرف دیگه افتاد و به درک واصل شد. در این لحظه ملک فریدون و دختر پریزاد به سمت ملک جمشید رفتن و سر و روی اونو بوسیدند و گفتند ای جوان جون ما به قربانت دست و شمشیر تو زنده باد که ما رو نجات دادی ملک جمشید اونها رو در آغوش گرفت و گفت از دعای شما خوبان و یاری خداوند بود که پیروز شدم. القصه اون دو با ملک جمشید هم قسم شدن که این خوبی رو هرگز مراموش نخواهند کرد و همیشه در رکاب او خواهند بود. و اما دوستان این قسمت هم به پایان رسید. اما این داستان هنوز ادامه داره و ماجراهای بسیار حیجان انگیز و جذاب دیگه ای در راهه پس منتظر قسمتهای بعدی باشید در پناه نور و عشق الهی باشید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی